بسم الله الرحمن الرحیم درسمون در رابطه با داخل شدن جازم و بر فعل مزاره هست در درس قبلی توضیح دادیم اگر ناصبی بر سر فعل مزاره می چه رخ میداد. در این درس و على علی در, در درس قبلی جازم رو توضیح دادیم و یدخلو علی المبارعی المبارع الجازمو در این درس توضیح میدیم که ناصب هم بر سرفیل مزاربیات چکار کند چکار میکند و على علی المبارعی الناسبو و داخل میشود بر مزارب ناصب ناصب اسم فائل هست یعنی نصب دهنده منصوب کننده فیوب دلو من بممتی فتحتن و یسکتون نونان النونات زمه رو تبدیل به فتحه میکره یزریبو یعن سرو یعن سرو مزاره مرفوع هست چرا؟ چون نه جازم روش اومده نه جازم بیاد مجزومش میکنه که در درس قبلی گفتیم از جازم ها یکی لم بود یکی لما ما بود یکی لام امر بود یکی لای نه امروز انشالله می کنیم خب لم ین سر لمه رو تبدیل بسکون کرد جازم لم از جوازم هست لم ین سره در دوم نونو حصف کرد حالا اگر ناصب بیا چکار میکنه میگه فیوب دلومینا بمتی فتحتن لمه رو تبدیل بفتح میکنه ین اگر ناصب روش بیاد میشود ین سره مانند لن یان سورہ و نونات و نونات رو نون های فعل رو البته به از دو جمع مؤنث حذف میکنه مانند لم یانسرا لم لان یانسرا لن یانسرو لن لن لن سوا نون الجمع المؤنث جز نون الجمع المؤنث یعنی ناصبه زمه رو تبدیل به فتحه میکند اون سیغههایی که زمه دارند در حالت رفع و اون سیغهایی که در حالت رفع مرفوع بودن نون دارند نونشونو میاندازه جز دو جمع چون دوجمع معنس در درس قبلی هم گفتیم نونشون زمیر هست با بقیه نونها فرق دارد فتقولو مثال صرف شروع آورده است لن ينصرا لن ينصرا لن ينصروا لن تنصر لن تنصرا لن ينصرنا لن تنصر لن تنصرا لن تنصروا لن تنصري لن تنصرا لن تنصرنا لن انصر لن ننصر ا صيغهای که ضمیر ندارند ينصروا تنصروا تنصروا انصروا ننصروا ضمیرت عبد به فتحه می‌گرداند و در صيغهای خمسه یعنی ینسورانی، تنسورانی، ینسرونه تنسرونه تنسرینه این پنج سیغه یعنی مسنناها به اضافه جمع مذکرها به اضافه مفرد موننس حاضر اینها نونشون حذف میشه خوی ینسرو سیغه ها رو اگر بگیم برای مفرد مذکر مفرد غایب هست یعنی او یاری میکند برای مذکر هست برای مردها به کار میره مذکرها حالا چه مز... مرد هم نباشه مذکر یا یعنی سورا یعنی هست مصنح است مصنای مذکر غائب یعنی جمع مذکر یعنی آن مردان کمک میکنند آنها کمک میکنند تن سرو آن زن آن مؤنث کمک میکند مفرد مؤنث غایب تن سورانی آن دو زن یا آن دو مؤنث کمک میکنند مصنای مؤنث غائب نه جمع معنیس غایب با لن هم این مینش هست نمیچه یعنی در حالت رف هست ینسور نه در حالت جزم هست لم ینسور نه در حالت نصب هست لن ینسور نه چرا؟ چون مبنی هست و ما در کتب نحوی میخونیم که مبنی ها آخرشون تغییر نمیکنند. یعنی حالت اعرابیشون هرچه باشد ثابت هستند حالا فیل چیز باشه چی منصوب چی مجزوم ثابت است تنسوره تویاری میتونی مفرد مذکر غایل حاضر هست تنسورانی مسننای مذکر حاضر تنسورونه جمعه مذکر حاضر تنسورینه مفرد مؤنث حاضر تنسورانی مسننای مؤنث حاضر تنصر نه جمع ایمان نس حاضر زیر. انصرو متكلم وحده، نانصرو متكلم مال غیر. اینا چارده سیغه هستن از فیل مزاره. دوتا که همیشه مبنی هستن میماند دوازده تا. از دوازده تا پنج تا. یعنی اونایی که آخرشون زمه هست تبدیل به فت میشه در حالت نصب. و هفت سیغه که تون دوتا تکراریان میشن پنج تا و به افعال خمسه مشهورند. امونای کی مصنها که 4 هستن که دو جمع مزکر که با هم میشن 6 تا و مفرد مؤنث حاضر که جمع میشن 7 تا اینایی که نون دارن در حالت نصب نونشون ساقط میشه که توضیح داده بود حالا ببینید علامت اعراب رو در فعل مزاره توضیح داد یه مختصری بکنم تو همین درس فعل در حالت رفع در حالت رفع, در حالت رفع اصلا فل مزارد سالم اعرابش فرق میکنه با موتلات چون موتلات رو در بحث خودش میاره اینجا فقط فعل های صحیح رو اعرابشون رو گفت فعل های صحیح اعرابشون به این گونه هست هرگاه مرفوع باشن اون ای که یعنی ینسرو تنسرو انسرو ننسرو اینها در حالت رف موقعی که مرفو باشن میگیرند و حالتی که در, حالت در سیره افعال خمسه اون هفت در حالت رف نون میگیرند و دو جمعه موننس که هم مبنی هست در حالت جزم سیغه یانسرو تنسرو انسرو نانسرو که مشهورن به سیغه های که زمیر بشون اینها در حالت جزم سکون می گیرند و افعال خمسه یعنی ینصرانی تنصرانی ینصرون تنصرون تنصرین این افعال خمسه که هفته هستند اینها در حالت جزم نونشون حس میشه در حالت نصب اون پنسیره اولی که گفتم یعنی یانسورو، تنصرو انصرو ننصرو اونا در حالت نصب فتح می گیرند و افعال خمسه که هفت سیغه هستند در حالت نصب نونچون حصف میشه. این علامت های اعراب در فعل مزاره هستند خب فعل مزار چه زمانی منصوب هست چه زمانی مجزون هست و چه زمانی مرفوع هست ببینید فعل مزار سه حالت داره چون اعراب فلسطه هستند رف نصب جزم. اگر ناسیبی ان لن که و ایذن اینا پنشتن ناسب هستن البته بعضی از این ان خیلی از جاها پنهان میشه که در کتب نحوی مفصلن بحث میشه ان لن که ازن فعل مزاره رو منصوب میکنن یعنی اگر قبل از فعل مزاره اومده بودن فعل مزاره منصوب میشه اگر اون پنج سیغه بودن فتح میگیرد و اگر اون افعال خمسه بودن که هفت سیغه هستن فعل مزاره نونشست میشه ماننده ان تن سره ان تنسورا ان تنصرو و اگر جوازم سر فعل مزاربیات یعنی لم لما لام امر لا نه البته این چهار یک فعل رو مجزوم میکنن ما جوازیم می دیگه ای داریم که دو تا فعل رو مجزوم میکنه مانند این شرطیه ان تنصر سور ببینید هم تنسور رو مجزوم کردن هم سور رو یعنی دو فعل رو ولی فعلا بحث ما روی اون جوازی هست که یک فعل رو مجزوم میکنن لم لما لام امر لا نه اینا که روی فعل مزاربیان فعل مزار مجزوم میشه لمینسور ينصر... لمینسورا ذمه و نون حصف میشن میمونه یه حالت دیگه خب فعل مزارب اگر منصوب نباشه اگر مجزوم نباشه در کل سه حالت داشت پس حالت ثومی رو داره یعنی مرفوع هست این شد از اراب فعل مزاره حالا در ادامه میفرماید و من الجواز می ال لامو از جمله جوازین لام هست لام ال امر لام امر میل لامی داریم به نام لام امر ببینید فل مزارع چاردسی غیر هست شش سیغه ی غائبند شش سیغه حاضرند دو سیغه مال متکلم امر سیغه های غائب از سیغه های غائب درست می امر از فعل مزاره درست میشه امر حاضر از سیغاه حاضر فعل مزاره درست میشه و سیغاه حاضر ششتا هستن ششتا رو که بیرون کنیم میموند هشتای دیگه چون ششتا مال غایبند و دوتا مال متکلم این سیله امرشون خیلی راحت هست درست کردنش ینس یعنی رو یاری میکند لیاینس رو یاری بکند مانند تن سرو یاری میکنی اون سر یاری بکن. فس امر غایب ش... ش... ش... درست کردنش خیلی ساده هست یک لام مکسور رو در اطلاع فعل مزاری می آوریم خودش آرده هست فتا قولو فی امر غایب در امر غایب می بید لینصر لینصر را لینصر لتنصر نه البته متكلم هارون ناورده است لینصر لننصر اونا هم مثل همین درست میشن لینصر او یاری کنند لینصر آن دو یاری کنند لینصر آنها یاری کنند لینص او یاری کنند لی تنصره دو یاری کنند البته این ستا مال معنی است نون سه قبلی مال مذکر لی تنصر نه آنها یاری کنند برای معنی بود پس خیلی ساده بود فعل امر امر غایب پس یکی از جوازم لام امر هست و من ال جوازیم لام ال امری و کدالکالی اضراب مثالهای دیگر ور داش و لی و لی دحرت و غیرها و, و مثالهای دیگر پس یکی از جمله جوازم همین لام امر هست که بر سیغ های غاب میاد و منها لام الناهیه و از جمله جوازم دیگر لای نحیه هست. کلا چهار تا هست اینای کیکف رو مزون میکنند لم لما لام امر لا نحی و منها لای و لا, لا ناحیه ف تقول في نهي نهی غائب صيغاش اینجوری میشن لا یانسور لا یانسورا لا یانسورو لا تانسور لا تانسورا نه او یاری نکند آن دو یاری نکنند آنها یاری نکنن برای مذکر بودند لا تانکور لا تانسورات لا یانسورنه او یاری نکورند آن دو یار نکنن آنها یاری نکنند اینا هم برای جمع برای مؤنث غائب بودند که یکی برای مفرد بعدی برای مثنى بعدی برای جمع چون قبلا توزی دادیم ببینید چه شکلی بیان میکنیم بعدش میاد صيغای حاضر لا تنسر لا تنسرا لا تنسرو لا تنسري لا تنسرا لا تنسرنا لا تنسور ينتو يارينا نکن. لا تنسرا شما دوتا ياري نكني لا تنسرنا شما یاری نكني ولی انس برای مذکر به کار می یعنی زمانی که شما یک مذکری رو نهی کنید این صیغه رو به کار اگر مفرد لا اگر لا اگر بود لا تنسور اگر مثنى بود لا تنسرا اگر جمع بود لا تنسرو اما مؤنث لا تنسر لا تنسرا لا ينسر لا تنصر تو یاری نکن برای یک محننس بکرمیده لا تنصر را شما دوتا یاری نکنی لا تنصر نه برای جمع محننس بکرمیده یعنی اگر ده تا زن باشند شما بخواید اونا را نه کنید از یاری دادن بهشون میگید لا تنصر نه یاری نکنید لا تکتب نه،, نه نویسید این هم لای ناهیه بود و این نحی الحاضر خب این توضیح دادیم لا تنصر لا تنصرر لا تنصر و هاکر قیاس صائر الامثله و قیاس تمام امثله چنین هست پس اه, تا انجا کار ما مفصلا ایرا فعل مزاره رو توضیح دادیم فعل مزاره یا مرفوع هست یا منصوب یا مجزون چه زمان مرفوع هست چه زمان منصوب و چه زمان مجزون رو توضیح دادیم زمانی که ناسب روش بیاد منصوبه جازم بیاد مجزومه ناسب و جازم نیایند فعل مزاره مرفو هست خب اگر مرفو باشد معنیش چه هست مرفو باشد های رف رو میگیره زمه و نوت و در موتلات که البته تقدیری هم هست اگر منصوب باشد آخرشون سیغایی که زمه دارن در حالت رفت تبدیل بفتحه میشه و اون سیغاهایی که که نون دارن نونشون هست میشه جز دو معنیس. اگر مجزون بشه چی؟ اون سیغاهایی هایی که زمه داشتن در حال طرف تبدیل به ساکن میشه و اون سیغاهایی که که نون دارن نونشون هست میشه و دوجم جمع معنیس سا... که هم معبنی هستندو سالم میماند یعنی این تقریبا اعرابی بود از فعل مزاره صحیح آخر. مطلعات رو انشاءالله در وقتش خواهیم گفت.